کانوم یوسفی سلام شاید امروز که دارم این ویس رو برای شما میگیرم از سمیم قرب خوشحالم که نیرو و همکاری مثل شما دارم انقدر دقیق ریز متعهد به کار مسئولیت فضیب و تمام صفات یک نیروی خوب در شما جمع شده به نظر من اگر بخوایم توی مالی توی واعتهای دیگر مون مثال یک نیروی خوب و همه چی تموم رو بزنیم قطعاً باید از شما نام ببریم حضور شما در وعد مایه نوبین الماس به شدت مایه افتخاره امیدوارم که این افتخار رو از من و مجموعه نوبین الماس نگیریم و زندگیتون روز به روز بهتر و قشنگر و زیباتر بشه